چون از هیچ کس نمی ترسید به این فکر افتاد که دنیا رو بگرده تا بلکه با ماجراها و حوادث شگفتانگیز و جالبی رو, رو بشه. پس از والدینش اجازه گرفت و به راه افتاد و شب و روز در مسیر مستقیم پیش رفت. چون براش اصلا فرقی نمی کرد که به کدام طرف و از کدام جاده بره. از غذا مدتی بعد به خونه غول رسید. چون بسیار خسته بود، دم در خونه نشست تا کمی استراحت کنه همینطور که به اطرافش نگاه می کرد یه دفعه توی حیات خونه چشمش به گویا و میله های بازی نحسیخه افتاد که بزرگی هر کدوم به اندازه یه مرد قوی کل بود از قرار معلوم اینا لوازم سرگرمی جناب غور بودند. جوون مدتی بعد استراحت به هوس افتاد که کمی با اونا بازی کنه پس میله ها رو توی گوشه ای از حیات با حالت ایستاده قرار داد و شروع به قلتاندن گویها ها به طرف اونا کرد و هر بار که یکی از میله ها رو سرنگون می کرد از شادی فریاد میزد و هورا می کشید. این سراسده ها به گوش غول رسید. غول سرش رو از پنجره خونه خون بیرون اوورد و شاهزاده رو دید. غول با عصبانیت فریاد زد. آی کرمنین وجبی؟ تو با توبهای بازی من چه کار داری؟ این زورو بازو رو از کجا آورده ای؟ شاهزاده بالا رو نگاه کرد و گفت ای موجود نادان، خیال میکنی فقط خود زورو بازو داری؟ من میتونم هر کاری که دلم بخواد انجام بدم. گول پایین اومد و مدتی با شگفتی بازی شاهزاده جوور رو نگاه کرد و گفت ای آدمی زاد، اگه تو واقعا از نسل آدم هستی، برو با یه سیب از درخت حیات برایم بیاور. بر. شاهزاده پرسید، سیب درخت حیات رو میخوای چه کار؟ گفت، اون رو برای خودم نمیخوام، برای دخترم میخوام که مدت هوس سیب کرده. من بارها تمام دنیا رو زیر پا گذاشتم، اما نتونستم این درخت رو پیدا کنم. شاهزاده گفت، من به زودی اون رو پیدا میکنم. چه کسی میتونه مانه من بشه که یکی از سیبای اونو بچینم؟ پول گفت خیال میکنی این کار خیلی آسونه؟ من شنیدم باقی که درخت حیاتوی اون قرار داره به وسیله نرده های آهنی احاته شده و کنار این نرده ها نیز انوا و اقسام جانوران وحشی و در رنده نگهبانی میدهند تا هیچ کس داخل نشه. شاهزاده گفت اونا فوراً مرا راه خواهند داد. قول گفت بله ممکنه بتونی وارد باغ بشی و چشمت به سیبا بیفته اما هرگز دستت به اونا نخواهد رسید. چون روی درخت حلقه جادویی قرار داره که تو باید قبل از چیدنی میوه دستت رو از داخل اون رد کنی. هنوز که هنوزه هیچ کس موفق به انجام این کار نشده. شاهزاده گفت پس من اولین نفری هستم که این کار میکنم. و پس از خداحافظی از غول به راه افتاد و مزاره و جنگل های بیشماری رو پشت سر گذاشت تا اینکه سرانجام به اون باغ شگفتانگیز رسید. حیوانات به شکل به گرد اون حلقه زده بودند اما همه اونا توی خواب عمیقی به سر می بردن. وقتی شاهزاده از بین اونا گذشت هیچ کدوم بیدار نشدند. شاهزاده از روی نرده های آهنی عبور کرد و وارد باغ شد. در وسط باغ درخت حیات قرار داشت و سیبهای سرخی برای روی میدرخشیدند. می‌درخشیدند. شاهزاده از تنه درخت بالا رفت و در حالی که دستش رو به طرف یکی از سیبا دراز می کرد، چشمش به حلقه جادویی افتاد که از شاخهای آویزون بود. بدون هیچ مشکلی دستش رو از اون عبور داد و یکی از سیبا رو چید. حلقه از دستش بالا رفت و به دور بازوش بسته شد. یه دفعه احساس کرد نیرو و طوان در رکاش به جریان افتاده وقتی که همراه سیب از بالای درخت پایین اومد دیگه برای خارج شدن از باغ از روی نرده ها عبور نکرد بلکه مستقیم به سراغ دروازی بزرگ رفت و چندان به بون زد که دروازه با صدای شطرق بلندی از جا کنده شد شیر قوی که جلوی دروازه خوابیده بود از جا پرید و به دنبال او رفت البته نه غضب بلکه به عنوان خادمی وفادار. شاهزاده سیب رو که قول داده بود برای غول برد و به اون گفت ببین من بدون هیچ مشکلی اونو برات آوردم. اووردم. غول خیلی خوشحال شد. شتابان به نزد دخترش رفت و سیب رو به اون داد. دختر جوون و زیبای غول وقتی دید ای به بازوی پدرش نیست گفت من که فکر نمی خودت این سیب رو چیده باشی چون حلقهی به دستت نمی بینم. غول پاسخ داد همین الان اونو برات میارم. چون فکر میکرد حتی اگه اون جوون راضی دادن حلقه نشه اونو به راحتی از اون خواهد گرفت چون فکر میکرد حتی اگه اون جوون راضی به دادن حلقه نشه اون رو به راحتی از اون خواهد گرفت اما جوون شجا حاضر نبود حلقه رو به اون بده غول گفت سیب بدون این حلقه برای من هیچ فایده ای نداره و اگه به میل خودت اون رو ندی باید با من مبارزه کنی. اونا برای مدت طولانی با یکدیگه دست و پنجه نرم کردن. اما قول نتونست حریف شاهزاده جوان بشه چون حلقه جادویی زیرو توانش رو صد چندان کرده بود. پس به فکر نقشه افتاد و به حریفش گفت: از این همه جنگیدن حسابی گرمم شده و تو هم خیس عرق هستی. بیا با هم کنار نهر آب بریم و خودمون رو خنک کنیم. تا بتونیم دوباره به مبارزه خودمون ادامه بدیم. شاهزاده که هیچ گمان بدی نمیبرد، همراه غول به کنار رودخونه رفت. لباس ها و حلقه را در آورد و وسط آب پرید. غول فوری حلقه را برداشت و پا به فرار گذاشت. اما شیر وفادار که متوجه این حقه ناجوون مردونه شده بود، به تعقیب غول رفت و حلقه را از چنگش در آورد و اون رو بر اربابش بازگردوند. بعد غول این بار پشت درختی پنهان شد و وقتی شاهزاده مشغول پوشیدن لباسهاش بود از پشت سر به اون حمله کرد و بعد از اون که اونو نقشه زمین کرد هر دو چشمش رو از کاسه در شاهزاده بیچاره که حالا کاملا ناتوان شده بود نمیدونست که چه کار باید بکنه. کمی بعد غول اومد و دستش رو گرفت و اونو به بالای دره برد و همونجا اونو را رها کرد. با این فکر که اگه چند قدم دیگه برداره، جانشو از دست میده و حلقه به چنگ من خواهد افتاد. اما شیر با وفا خودش خودشو تنها نگذاشته بود. بلکه محکم از لباسای اون گرفت و کم کم اونو از لبه پردگاه عقب کشید. مدتی بعد وقتی گول از راه رسید تا حلقه را از بازوی جوان و مرد بیرون بکشه دید که نقشش شکست خورده و با خشم و ناراحتی فریاد زد یعنی من که یه غول هستم نمیتونم این موجود ضعیف رو نابود کنم؟ و دوباره دست جوون رو گرفت و اونو از این مسیر دیگه به بالای پردگاه عمیق و ترسناکی برد. اون وقت دست شاهزاده رو رها کرد تا اون قدم دیگه برداره و داخل پردگاه سقوط کنه. اما شیر با سر محکم به غول کوبید و اونو داخل پردگاه انداخت. غول فریاد کنان تای پردگاه افتاد و تکه پاره شد. حیوان با وفا اربابش را کنار درختی برد که چشمه پاک و زلالی از کنار اون میگذشت. شیر اربابش را کنار چشمه نشاند و با دو به پاشیدن آب به صورت اون کرد. هنوز چند قطعه از آب روی کاسی چشمان شاهزاده نیفتاده بود که فورا بیناییش را به دست آورد. شاهزاده بلافاصله به خاطر این موجزه بزرگ از خداوند سپاسگذاری کرد و به همراه شیر با وفایش به راه خودش ادامه داد تا آنکه مدتی بعد به یک قصر تلسپ شده رسید. جلوی قصر دختر جوون زیبایی ایستاده بود که از نوک پا تا فرق سر سیاه بود. دختر تا شاهزاده را دید فریازد آیا تو همون کسی هستی که آمده مرا از چنگ جادوگر بدجنس نجات بدهی؟ شاهزاده پرسید برای موفق شدن توی این را چه باید بکنم؟ دختر جوان جواب داد تو باید سه شب را توی تالار بزرگی این قصر افسوم شده بگذرونی. از هیچ چیز هم نترسی. اگه انواع و اقسام سختی ها و مشکلات را تحمل کردی و شکایتی نکردی انگاه من نجات پیدا می کنم. این رو هم بدون که ارواح شیطانی جرأت نخواهند کرد جان را بگیرند. شاهزاده گفت من از هیچ چیز نمی ترسم. به یاری خدا وقت خودم رو امتحان می کنم. پس از این حرف شاد و خوشحال به تالار قصر رفت و وقتی هوا تاریک شد گوشه‌ای نشست و به انتظار موند. تا هنگامی نیم شب همه جا ساکت و آروم بود. اما وقتی ساعت دوازده شد و دوازده زر زد، هیاهوی عظیمی به راه افتاد و ارواح شیطانی از هر سوراخ و کافی بیرون ریختند. اونا هیچ توجهی به شاهزاده نکردند و وسط اتاق نشستن و آتشی به پا کردن و مشغول بازی شدن. یه دفعه صدای بلندی گفت یه غریبه اینجاست. دیگران داد کشیدن آهای تو که پشت بخاری پنهان شده ای؟ بیا به ما ملحق شو. فریادهای اونا چنان وحشتناک بود که هر کسی غیر از شاهزاده بود حتما زهره ترک می شد. اما شاهزاده اصلا نترسید و آرام سر جای خود ماند. تا اینکه سرانجام ارواح شیطانی از جا برخاستند و دست جمعی روی سرش ریختند تعداد اونا بهقدری زیاد بود که شاهزاده جوان نمیتونست از خودش دفاع کنه اونا اون رو روی زمین به این طرف و اون طرف کشیدند تکانش دادند کتکش زدند و اش کردند اما او توی تمام این مدت حتی ای بر زبان نیاورد و حتی یه آخ هم نگفت صبح که از راه رسید همه اونا ناپدید شدند. اما شاهزاده به قدری خسته و گفته بود که حتی نمیتونست دست و پاش و تکون بده. طولی نکشید که نور خورشید به داخل تالار تابید و دختر سیاهپوش با شیشه ای از آب حیات وارد شد. اون با این آب صورت شاهزاده رو شست و بلافاصله فاصله تمام نیروی اون به بدنش برگشت و مثل همیشه شاد و سرحال شد. دخترک به اون گفت یک شب رو با اقبال پشت سر گذاشتی اما هنوز دو شب وحشتناک دیگه باقی مونده. پس از این حرف از جاش بلند شد و از تالار بیرون رفت. پاهای دخترک سفید شده بود. شب بعد ارواح شیطانی دوباره از راه رسیدند و جشن و هیاهوی خودشون اثر گرفتند و مانند دفعه قبل انقصد شاهزاده بیچاره رو عذیت و شکنجه کردند. تا تمام بدنش مجروح شد. با این حال اون تمام سختی ها رو تحمل کرد و فریاد نکشید. وقتی هم که صبح شد اونا مجبور شدن دست از او بردارن و از اونجا برن. دختر جوون نیز دوباره ظاهر شد و با آب حیات اونو درمون کرد. فقط یه شب دیگر رو باید تحمل میکرد. اما این شب از همه بدتر بود. چون وقتی دار دسته ارواح شیطانی وارد تالار شدن و اونو اونجا دیدن، با تمام قوا فریاد زدن تو هنوز اینجا هستی؟ حالا آنقدر عذابت خواهیم داد تا جان در آید. به اون حمله کردن و مشغول کتک زدنش شدند. بعد هم طوری از هر طرف شروع به کشیدن دست و پاهایش کردند که گویی میخواستن اونا را از هم جدا کنند. اما شاهزاده جوون تمام این شکنجه ها را تحمل کرد و دهان خودش را بسته نگاه داشت. وقتی هنگام صبح ارواح از اونجا رفتن، شاهزادی بیچاره ضعیف و نیمه جان در گوشه ای افتاده بود و نمیتونست کوچکترین تکونی بخوره اون حتی قدرت اون رو نداشت که چشماش رو باز کنه و ببینه که دختر سیاه پوش با طلوع خورشید وارد شد و آب حیات را با خود آورد بعد تمامی دردها و زخم ها و گفتگی بدنش به یکباره از بین رفتن و اون چنان احساس سرحالی و تندرستی کرد که گویی همین حالا از این خواب دلچسب بیدار شده. وقتی ششماشو باز کرد، دختری رو در مقابل خود دید که پوستی به سپیدی برف داشت و صورتش مانند پنجه آفتاب می درخشید. دخترک به اون گفت از جا بلند شد و شمشیره رو سه بار دور سرد بچرخون تا همه آزاد بشیم. به محض اینکه شاهزاده این کارو کرد تمامی قصر از بند تلسم رها شد. کمی بعد، خدمتکاران وارد شدند و در وسط تالار میز بزرگی چیدند و اونو با انواع و اقسام غذاهای رنگارنگ پوشوندند. بعد شاهزاده و شاهزاده خانم پشت میز نشستند و با هم غذا خوردند. عصر همان روز جشن عروسی اونا با شکوه و عظمت زیادی در میان شادی و هلهله مردم برگزار شد. کانال تلگرامی هزار افسان داستان‌های افسانه‌ای افسان <متصفيق> نشانی کانال تلگرامی T نقط M مهران نشانی وبلاگ ما m i h